شیطان و ردیم رابطا خودش بسید الحمد لله ربدالعالمین رسول الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین احرابین المعصومین و اللعت و دائمت و علی عدائه مجمعین اللهم افران و جمعیت مشتری ارحمنا به رحمتی و ارحمالرحمین بعد از مواحثی که به عنوان مواحث الفاظ به اصطلاح در اصول معروف شده حضرات متحرز مباحث فجج امارات و اصول عملیه شده سابقا عرض شد که در کیفیت در کیفیت تنظیم ابحاث اصول مجموعی از ابحاث و عنوان مباحث الفاظ مطرح در خیالات مختلف مختلفه این موازین الفاظ هم تقسیم بندیش رو سازماندهی کردن داشتن اوامر هست هست، و منطوع هست مفعول و هست، هست و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین اصطلاحاً اینطور مجموعه موازین الفاظ به این صورت تقسیم شده در تقسیم بندی که در کتب و اصول آمده فصل در بعضی از کتاب و اصول نواهی با عوامر در یک جهت آمده مثل معالم باید در بعضی از کتب و اصول مثل فصل این فصل اول مثلا بحث اول عوامر دوم نواهی، در خیلی از کتب و اصول قدیم بحث مفهوم و منطوق جز همین بحث عوامر مثل معالم در تدریسان شده گذشت بحث مفهوم من تو اصولاً خودش یک مرحله خاصی گرفت در کتب مصارف اصول مباحث امر و نهی و اجتماع امر و مشکل شد مباحث اجتماع امر و نهی و اینها غالباً تو مباحث عوامه را آمده اما در بعضی از اصول متأخر که پیشنهاد مرحوم آیه هاشم‌رضا سینا اصفهانی محقق اصفهانی به عنوان مباحث مستلزمات استلزمات عملیه یا ملازمات عقلیه اون رو جدا کرده مطلق و مقید و آن مخواستم غالبا جدا کردم به خاطر نقطهی که صابران ارز شد در عده از کتب اصول احل سنت مباحث ظاهر و معول هم اضافه شده بعد از مجمل و مغید این یک فشردهی بود از کل مواحث الفات که تا حالا در این دوره به اسطلاح متعبس شد مواحث رو خود و امارات رو مبحث دیگری گرفتن و بعد هم مبحث اصول عملیه و بحثی رو هم با عنوان خاتمه در بعضی از مواحث بعضی از کتب بعضی مثل جواب مثل کفایی و در عده از کتب این بحث رو مستقلن گرفتند اون بحث تعادل و ترجیح بسن یه بحث نهایی هم به عنوان اشتهاد و تقلید که در جزوه در مثل ماه جزوه هفهات و اصول ذکر شده اما در مثل کفایه جزء کاتمه بسا در اصول آمده بحث اشتهاد و تقلید و آن ماه خاتمه آمده بعد گردیم کتب اصولی هم اصلا متعرض اشتهاد تقلیل نشانه تو اول قربه هم اول قربه هسته اشتهاد در دور فقیه ما فعلا اول این بحث قبل کتاب تهارت و سلا بحث اشتهاد تقلیلی این یک اجمالی از کل همخواست اصول و جایگاه بحثی که ما الان قبل از بارد میشیم که بحث خوجه و امارات از سلطهش این در قده از کتب و اصولی مثلا مواقع الفاظ پنج تا کرده میشه بحث چیشون که خایر میشه بحث خوجهش و امارات چیشون اصول عملی هم هفتون تا و هم هشتون که هشت باقی میشه هشت فرس میشه اشتاد ترزم بنا شد که به اسطلاق خاتمه باشه پیشنهاد دیگه هم بوده پس که مرومه آیت صحانی میگردیش بین وقت سابه ترجیح رو هر کدومش رو زید این دوبار مناسب خودش قرار بدید مثلا تعارضی اگر بین عدل و خجج و امارات شد اینو تو بحث امارات بیاریم تعارضی که بین اصول شد تو بحث اصول بیاریم دیگه تعارض و ترجیح رو مستقله. حضرت راجع به خود و عنوان اون باب هم آیان بحثی دارن چون مثلا بعضی نمیشن تا آدول و ترجیح بعضی نمیشن تا آدول و تراجیح رو صورت جمع تا آدول رو به صورت مفرد آورده شاید بعضی هم نادرن تا آدول و تراجح حضرت نوشته باشه و که مشهورتر تا آدول و تراجیح یا ترجیح. ادهی هم معتقدن که اون بحث رو نباید به عنوان تاادر و ترجیح مطرح کنیم اون رو به عنوان تعارض دستم ریشه تاادر چون تاادر یعنی دو دلیل از همه جهات با هم مساوی بشن چه کار بکنیم ترجیح یعنی یک دلیل بر دیگری ترجیح داشته باشیم فرق تاادر ترجیح بازه یعنی وقتی تااروز میکنن یا با هم شاخ به شاخ میشن یکیش برتری مقدم نمیشه میشه تعارض یا هیچ مقدم میشه میشه ترجیح تعارض ترجیح رو سر بیان تعارض ترجیح اینه در مقابلم ادعی گفتهن اصلا ما بحث تعارض ترجیح نکنیم به جای او تعارض بگذاریم ادعی هم تعارض ادله نوشتن ادعی هم تعارض مطلقاً چون ادله انصراف به حجج و امارات داره ما تعارض اصول هم داریم یک پیشنهاد هم بود که اصلا بحث تعارض یا آدل و ترجیح رو کلا برداریم اون بخشی که مربوط به حجج تو زیل حجج بنویسیم اون بخشی که مربوط به اصول تعارض اصول تو ذیل اصول بنویسیم دایی نداریم یک فصل دیگری ما در اصول تهیه بکنیم به نام تعادل و ترجیح یا تعارض یا تعارض العدلاله اسمش هرچی ما بخویم بزنیم نیازی به این بحث نیست در ضمن این دو بحث بیاریم مناسبش اینه که در ضمن این دو بحث ذکر بشه طرح هم برحال این که مبارس اصول رو چجوری تقسیم بکنیم و از این تقسیم بندیم و مبارس خجش کجا بیاریم بحثیست که از قدیم بوده و مظموم شیخ قدس الله نفسه به حسب ظالم در این کتابشون بحث خجش و اتضاعن به اصطلاح خودشون با حجت استاتی شروع می که قصد باشه بعد با حجت اعتباری که زنده معتبر باشه بعدم شک مجموعه اصول عملی لذات به همون تحبیر مشکورشون مقاصد بحث حجت و امارات و اصول رو در سه بحث قرار میده، حجت غلاغان سالتی یا حجت منجهله داشت میگن حجت جعلی یا حجت اعتباری که زنده معتبر باشه و اصول عملیه که در زند شک این خلاصی کاری بود که مرگوم شیخ مطرح کرده که به این ترتیب قبل از شیخ نبوده به این ترتیب مباحث قد در مباحث کتاب‌های قبل از شیخ مثل مفاتیح و اینا اومده ولی واقعاً تاریخ اینا رو اینکه چه فیلمی در کتب اهل سنت به این عنوان نیامده در کتب اخیر ما مباحث حجته نظر آمده مخصوصاً به خاطر علم مالی تا که علم اجمالی دارم بعدم بحثایی که با با اخباری ها و اصولی ها قطع حاصل از غیر از کتاب سنت و سنت دلیل حجه هستند این سم بحثایی که بعهام از بحثه است و بعدم بحث زنده معتبر و بعدم بحث شک که اصول عملی باشه این نحوه بحث رو که منظور شیخ قدس الله و سره قرار درا از ماغی شیخ نبوده یعنی ما در کتب اصولی قبلش این اینجور بحث رو ندیدیم این تنظیم بحث و این محوریت قرار دادن بحث رو به این صورت مخصوصا با همون تعبیر مشهور ایشان که اند مکلد و دلتفت ایلا خکم شرعی اموانیخ صلح القف او زن او شم ایشون از این راه یعنی ورودشون توی و حجت امارات و اصول عملیه از این مقصد نیست که به لحاظ حال مکلد و به لحاظ درجات اون ادراکی که داره و ارزیابی اون درجات ادراک که یک ادراکتا را ادراکش تساوی طرفین داره که شکش دیگه تا یک طرف روشن داره اگر روشن داره طرف دیگر اصلا مثلا نیست یعنی روشن یک طرفه از طرف نیست که رفت دیگه طرف دیگه داره که زن میگه حالا یا معتبره یا غیر شما چون وقتی نه مگه معتبر شد ملحق ال غلط میشه حجت میشه غیر معتبرم ملحق به شک میشه اصل این خلاصه یه تردی بوده که مرحوم شیخ رزوان الله تعالی در کتابشون آورده که معروف شد به کتاب رسائل بعدها به اسم فرایض رو اصول به اسم فرایض معروف شد البته این رو مقدمه قرار دادن مرحوم شیخ برای ورود توی موادس حجج و امارات یا قد حاصل میشه یا زن یا شهر شکم بعد ایشان میپهند یا یولاه هزمه اهل خلاصت صابره که استثحاب میشه یا نمیشه اگر نشوده، یا شک در تکلیفه که برایت یا شک در مطلبان به که شک در مطلبان به به تأویل ایشان یا یوم کنال احتیاط که اشتغال میشه یا لا یوم کنال احتیاط که میشه این اصول چهارگانه رو ایشان در احکام این کردم. مراد ایشان اصولی است که فریق تو حکم بشه می رفته. اشتباه نشه ما. نه مراد اصولی که ما در خارج مثل اصالت عدم تسکیه و فلان اصالت قایده اقرار قایده فلان نه مراد اون نیست مراد ایشان اون اصولی است که لبناهی حکم هست این چهار هاست که آقایان هم بحث مفتر داره ما میشه شود که فرصت باشه تو تحرز بیدان می کنیم کیا حالت سابقه لحاظ شده یا نشده اگر شده استثمار اگر نشده یا شک در تکلیف یا شک در مطلب اون به در تکلیف راعت در مطلب اون به اگر امکان احتیاط باشه احتیاد، اگر امکان احتیاط نباشه تخییر مخیل این یه تخصیم بردیست حسرم میگم غیر از این چهات هم و بعد یا بعد از مقوم شکه آمده غالبا گفتن حصر به لحاظ مورد عقلی است اما به لحاظ حکر نه به لحاظ اون اصل جاری به لحاظ اصل جاری این استقرائی است عقلی نیست این مواهش است اینشالله بعد از اون بعد اول رو ایشون در قرق قرار دادن مقصد دوم رو در زن قرار دادن مقصد سرم در شم بعد ها حضرات اصولی اول و دوم شیخ رو یعنی قطع و زنگ رو جمع کردن به امارات اون سه بومیر تنها آوردن شده اصول مثلا فرصیم در کتاب کفاییه که هشت مقصد مبارسه اصول را قرار داده این تخصیب در کتاب محالم نیامد در کتاب را به علیه هم نیامد مقصد ششم رو در کفاییه مسئله حجج و امارات قرار داده و توی بحث حجج و امارات متعرض و قد هم شده شونه حجیقه ازادیه مقصد هستون رو هم ایشان در اصول عملیه قرار داده هشتان هم که آخر محصد کتابه محصد اصول در تعارض قرار دادن که از کلیم از, از آیان که بعد آمدن تو این بحث نظر دارن البته بحث حجر یه بحث اساسی در اصول ظاهرا نه شده که در منم خودم نیدارم اما احتمالا واقع باشه می بگی دیمن منجردش اصلا شافعی که اولین کتاب اصولی رو از داریم. این داریم این که الان موجوده در دسترس ما هست این شافعی، ایشون موضوع و اصول رو حجت میدونه اصلا حجت درست اصول دوران حجت این تقسیمیدی که الان ما گفتیم پنج رسم مباحث الفاظ قرار دادیم یکی حجت قرار دادیم یکی اصول به یکی هم تاروز اصلا این نیست کلی رو قرار داده حجت و عرض کردن که بعد ها در کتب و اصول اهل سنت آره این اینو دیگه بحثوش بعد من سابقا هم گفتم بذار ارج می کنه یه جوری دیگه بحث و حجج مطرح شو شد. که ان شاء بعد ارجام پیش ما یه جوری دیگه بحث شد پیش ما یه جوری دیگه خیلی پس بنابراین به این که از اول وارد شرح این مطلبی رو که شیخ خرموده اعلام عن المکلد در طب دراه و شرعی وارد این بحث بشه حالا ما قبل از این وارد این بحث بشیم یکی این نکتهی خارجی هم راج به خود این طرح بحث شیخ انرژی به خود این رسائل و بحث شیخ ارذ بکنیم بعد بریم توی مطالبی که ایشان نوشتن شیخ انصاری ظاهرا در حدود بین سنین و تا پنج سالگی این رسائل رو تدیق فرمودند کتاب رسائل به ذهن میاد متقارب باشه یعنی تقریبا کتاب رو انسان احساس میکنه آن شاید مثلا استرس ها زودتر نوشتن احساس میکنه که یک نوافت یک قلم یک نوافتی داره رسولش اما مکاسب شه قلمش یک نوافت نیست این مکاسب رو کاملا واضحه فراتون تو بحث به وقت خیلی لغت تحبیرات شیخ اصلا با سایر مبارسیشان فرق میکنه و پایین میاده منوشش داره مثل ما و چه تره بوده نوشید توی مباحث شروع توی مباحث خیارا خیارا تخلف شرط و چون قاضی المعاملشو تل به کار داره معلومه مثلا یه رساله مستقلی بوده کار و مستقلی بوده منحرف شده رو رفت خیارا علایان کتاب مکاسب یک نواح نیست خالص یک نواح شده یه قسمتش خیلی دقیقی که احتمالا در اواخر زمانش نگاشته شده یه قسمتش اونقدر دقت و ظرافت نداره یکی از مشایخ از قول اولو برما گرجی میگه که و از قسمت مکاسب هست که کسی بتونید درست معناه کنه من بود اجازه اشتهاب میدونید من همار مرسی شیعه از بول مرحوم استادشون های کدار حد دستن علایه اما رسائل تقریبا یک, نب... یک نباخته و بدون شک شیخ در اون سنین هم داره شخصیت علمی بوده انصافا اصلا قبل از شیخ ما معهوم استاد ایشان مولا احمد نراقی کتاب اینا مناهج الاسوب داره انصافن وقتی انسان کتاب اصطاد نگاه میکنه با کتابای شیخ خیلی شیخ قدیه انصافن با قبول کرد حالا جهات معنوی که شیخ داشته و اون جهات که داشته انصافن به جهات تنبایی و وره و سلوک خاص ایشان. در این بخش اصول هم انصافن خلاهان نمتعا یک نورانیت خاص به ایشان داده البته ظاهرا شیخ در اونزان هنوز درس اولاد مرحوم شیخ جعفر کاش رو حاضر میشدن تا ایشون گفته که شما با این مقام چطور خصوص فعل داره یک راز و رمز که اینها در کتاب ها نیامده این خاندان ها این رمزهای فعل رو دارن راز و ممکنه با. درست روزام یک کلمش رو از دهن ایشون یا حالا بدون شک شخصیتی که در این نسبتاً جوانی این کتاب رو نوشته یک وقتی از که جلاب اریا تا ترحم که این رسائل مال مرمومه. شیخ الوعلمای مازندران است که از مشایخ شیخی در کربلا بوده. شیخ درسیشون میرسه اون هم شخصیتی بزرگواری است، جهان‌منش بود و چرا خورده این سال بدو اوش. و انصافا هم مرد ملا و دقیقا نظر شارع مولا امتداری صلوات سلام. لیکن چون تقریباً تغییرات مردم شیخ الوعلاما بچن زوابد چاپ شده از ابوعصوم، از سردار قزبینی، تغییرات استادش مردم شیخ الوعلما رو نوشته نامو اصول یک تحریر و ذوابت هم داره تلخیصی هم داره که من هم دارم هم خود ذوابت هم چاپ شده خواهی شیر یک تلخیصی هم خود مرحومه سیر روان داره خوبه اصافه خوبی داره مطاله خوبی داره اما نه باز هم شیف بهتر و جمع جوتر و مرتبتر و فنیتر و با یک شیفتر و کرده و زریفتر و اینکه این رسائل به کسی دیگر نسبت استرداده بشه بسیار احتمال بیهودهیه و در اقتدار کار خود مرحوم شیخ این ترتیبی که الان می‌بینیم نه نمیشتن ایشون چهار تا رساله نگشتوندن که لذا مرزود برساره رساله اول یکی رساله ایشان الان اول دوم که از یک رساله ایشان به نام حجیت المزنه اسم رساله ایشان حجیت المزنه است، یک رساله نام حقوقیتو مللنده نوشتن یک رساله بانون فرساصم فی و اشتغال یا رساله براءت و اشتغال دارم یک رساله هم در استصحاب دارم حالا بعضی اینجوری رسالات الاستصحابیه یا رساله رساله استصحاب یا الرساله الاستصابی یک رساله ایشون بعنوان حاضر و تارجی الان چیز هم نیست اون نسخه دقیقی که من دیدم آیا تراج تعارض نیست بعنوان که شیء تعداد ترجیح هران تو ذهنم این اون چیزی بوده که شیخ که ابتداعا نوشتن. اونی که شیخ نوشتن این طوری بوده اینه ای که مقصد اول و دوم و سه باب و این دونم سال به این معنایی که الان شده تقسیم بندی شده اینا نبود اصلا نبوده رسالات براحت برای اشتغال اصلا جداست برای خودش رساله ایست استثال جداست تقرد پر بودیم اون حجیث المز یک به اصطلاح بحثی واجب و حجت قرد دارن بعدم واژه حجیت و اون چیزی که به خصوص خارجی از اساتذه عمل زن اساس و عمل زن اساس عدم حجت زن مشو متعرضن خبر واحد مثلا زوائد و جز زوائد حجج و لوحدی حجت مشهور متعرض حدی از بلکه بعدم آخرش هم متعرض حجت زن مسلغن شدن که نه اینطور خوزه زن مخصوصی باشه مسأله بحث قانون زن مطلقاً ملزمه به خاطر چارط دلیل که دلیل شرمش انستاد انسان معروف که در عین عدم وجودی بدیام دلیل نیست سنه و شهرت هم اصلا دلیل نیست سنه حصول مجبوری چرا یکی شرط گذاشمو و هر حال دلیل نیستن, نیستن, نیستن ارجایشون به تقریب ناقص از دلیل انستاد انسان همه مرجعشون همون دلیل انستاد برمیگرده یکی چرا یکم فرض کردن ان اگر بعداً رسیدیم توضیحات رو عرض می‌کنم خدمت حتی اونی که مرحوم شکیل نوشتن اینه بعد ها هم من نمیگم این تعبیل تراسوت خود شیخ ظاهرا انجام گرفته بعدها این چهار ساله رساله پشت سر هم قرار گرفت و برای انسجام بین این چهار ساله رساله این مقصد بندی بعد شروع شد المخل الاول که قطع و مقصد ثانی فزن و مقصد ثالث فشد این بعد شروع شد من گایی ها سابران شده ارز کردم یه نسخه ای از رساید شیخ هست که معلوم آقای آشمان آشتیانی که صاحب همین شرح متول در رسائل شرح بحر و ایشان معروف است. معلوم آقای آشتیانی که از قدیم شیخه و از اوائلی که نجفت من شرحشان خدمت شیخ بودن یه نسخه از رسائل شیخ رو که هنوز وقت رساله بوده نوشتن به خط خودشون که من یه خط هم دارم اون نسخه من هم در خاندان اشیایی نیاز دارن ایشان گرفتی دارم تا اونجایی که من میدانم البته ایشان علم کامل نیست تا اونجایی که من می‌ذارم کسانی که در زمان شیخ به رتبه ایشان باشند این در شاگردی بسیار ساموردی ایشان باشند و راع سائل نوشته باشن نداره مهم‌ترین نُسخه رسائل رس نظر من همین نُسخه معلومه آشیایی است قدس الله سره این نُسخه ایشون در نزد به صلاح دویست و تمام نسخه آخرش تاریخ کتابت نسخه هزار و دویست و شست بلا قرمانی دیگه از بردادیم به زاخان و قلگر قبل از شمسی چرا در خوادش جلالی مداله میدونم و نه هزار و دویست وفات شیخ الله سر سره 1281 که به حروف اون قصه معروف زهر الفتا به وفات مرحوم شیخ قدس الله نفسه 1281 و لذا این تاریخ کتابت این نسخه 18 سال قبل از وفات شیخه این در زمان خودشه منوش اوائلی که به خدمت شیخ رسیده توی این تغییرات هست یعنی مخصوم اولش توی سال و از جار شیخ خ یک سخته خرد زده ایشون خود مردم معه آشکیانی برشته هاش این خطخورد یک هست و از جا چند صخت عوض کرده ظاهرا شیخ شاید در اون دوره‌ای که ایشان نوشته یک تعدیدقاتتی بیشتر تا همین بحث قطع هست. الانم هم آ که با نسخه رسال آشنا هستن میره اول قبل یک اختلاف نسخر شینسبتتا شدیدی داره یعنی زیاده. بعضیش هم خطش فرق میکنه مثلا در بحث قطع طریقی که مرحوم شیخ نوشته که فرق بین قطع طریقی و موضوعی نوشته اصول عملیه قام مقام قطع طریقی میشن و قطع موضوعی نمیشن. این عبارت شیخی نبیل اصول عملیه در خب بعدها اضافه کردن در وسائل و گفته شده خط خود شیخه به جای اصول عملیه بعض اصول عملیه این کلمه بعد بعد اضافه شده و باید هم باشه چون مرادمون اصول است، نه مطلق اصول عملیه ما هم بندم سابق سبب از مرحوم استاد حضرت آهای بوجنوی قدس الله نفسه ندیم از مرحوم ناینی نمیده که منتحه چاپ شده یا نشده همان تو ذهن نیست و هر حال من سما هم استاد که لیشان از مرحوم استاد از بوجنو به نظر من فشارکی از مرحوم میرزای شیرازی و بزرگ حالا به این نایمی و مرحوم میرزا الان تو زهن دقیقا نیست از میزای بزرگ مرحوم آسان آسان شیرازی از شیف که در نسخه شیف کلمه بعد وجود داشته اما در این نسخه آشتیانی بعد نیست بعد در بالا با یه خط جدید اضافه شده معلوم میشه در اصل نسخه که مرحوم شیف مردم ترمیدن اصول عملیه بوده بعض خود ایشان منتظ شدن که این عبارت انسجار نداره بعض رو اضافه کردن بعض رو الان که چاپ شده با بعض چاپ شده نکنه ع کردم های بزرگدی نعمل ت میزد بزرگ و هموز که کهعرض کردن از مردمش که کلمه بعض در او موجود بوده بعض از عملیه چون تو سی آشیانی منم با تکرار میکنم در بالای کلمه اصول عملیه بند رو با خط جدید اضافه کرده به خط جدیدی کلمه بعد رو اضافه کرده و این درسته اصلا درستش همینه که بعده اصول عملیه نه جمعی اصول عملیه چون برای استثناب جایگزین قاعده طریقی نمیشن استثناب میشن و برای استثناب میشه انشاء توضیحی که بعد میشه در بحث خوازات از باشه باز از حال این نسخه اون جونگی که الان تو پیش من هست که تو پیش نگاه نکرد نشو بیشا نگاه نکرد. من نکردم من اوراق تصاد بگنن چه تو این نسخه اصلا مقصد نداره. مقصد اول دو با که این رسائل تحریریه هم چاپ شد، چون رسائل شیخ به طلا مقاصد این در زمان خود شیخ چاپ شد. رسائل در زمان خود شیخ نسخه بزرگی قبل از بزرگ هست. چاپون درون برای چرا؟ عکس عکس شیخ شیخی ها اینا عکس عکس شیخه عکس اون قدیم تا عالمی که از او الان عکس داریم شیخ یه قبلش مثلا سابجوار نداریم سابجوار قدس الله نفسه تصویر نداریم یه عکس آلمانی بوده مثلا بنظرم آلمانی بوده ایران اومده ناصری‌شاه میتاد عکس بگیره یک عکس از ناصری‌شاه عکس از شیخ بیاد چون که یه سرضای علما و ولاه نشه که این حرام بر از این عکسی که از شیخ انصاری هست این عکس ایشانه دستی نیست ناسد دینشا در... خب کمال مورد دیار ناسد دینشا که دره فضای های قدمی هم داره کمال مورد لکن از ناسد دینشا هم عکس درسته اولین عکسی چی... درست که ما داریم در دنیا ایران و خود ما ناسد دینشا هست و عکس مقهوم شیخ انصاری ملاحادی خب بنده نقضیمترش دارم بیام مولایی خب بعد از شیخ وفات ملا ادی 1313 بعد از شیخ بله نه قدیم تر دارم بگه. همعصر بودن اما وفات ملا هادی 30 سال بعدش تموم شده خیلی بعد از شیخه بله همعصر بودن شده عکس حاج ملا هم درسته اما من عکسم قدیم تر بوده علاقه برشاران زیاد العلا ما شاء الله مرادم عکس بعدی نبود مرادم قدیم ترین که مثلا صاحب جواهر دارید از مرحوم صاحب جواهر این چه دیگه از مرموم مجلس کشیدنی علانیه بس عکسم بعد این ته که داریم عکس مرحوم شیخ انصاری که عکس کردم از اون اینم من از استاد ایشون آقای صائدی آقا ایشان ایشون نرفتن من الان جای اون نظر کتابی باشم از ایشان ایشان میگفت که عکس ناس از با عکس شیخ رو این دوتا اولین عکسای این ایران گرفتن چه ذهن مثلا اولین ضبط صوتی هم که در ایران آوردن زفت کردن از اونجایی که منه صدای که دستور افتراف مجلس شورا رو میده پس توی راژیو زمان شاه هم خیلی خیلی صدایش مشبره نسید از تناب هم بود اصلا با تناب بود اصلا هم نموید هر سوی به صدا و سیما الان نشیندم اما زمان شاه سی و پنشیستاتیش گاهه رو مشروطیگر اونم هم ظاهرنده گفته آلمانی است که تازه این به ز زات صوت و اختراع کرده اودن تا اونجایی که من میدونم او هست اونم هم شنیدم یک کار بودنم من نجک بودم و رادوگوش کردم یا کسی را نمی کرد خدا از آن شنیده باشم خیلی مو خیلی صدا ما دستور میدهیم ولی بعوض صورت لحظی خاص خود خودش شاهانش دستور استفاده مجددش رو میده به امضا مکان مشروطیتشو او هم سوت صلیحه اولین زات سوت در دنیای ایران ما اون هست و اولین هست هم ناسی دیش و مرحوم شیخ انصاری قدرت الله و سبه به هر حال انصافم و نکته عجیب اینه که اکثر این تعدیل هایی که شده تو همین موادسه اولین نمیدونم بعد شیخ موفق نشده در از کتاب مرحوم های که من دارم موادس استثاری ها مثلا برایت و اشتغال و تا آزاد خیلی کمی هستن نداره تقوی زهن هستن یادم میمید صافه اما این اوائل بوازغت زیاد داره باعث یک صفر خطا داده ایشان کاملا بعضی جا برای 500 عوض کرده اصولاً به طور کلی این نسخه ای که زمان شیخ چاپ شده خوبه یه نسخه هم بعدها چاپ شده به نام نسخه مرحوم آیه آشتیانی که حاشیه آشتیه در حاشیهش حاشیه خوانده اینا هست اون هم نسبتا خوبه به این معنا که تمام نسخ اووردو جلی چاپ شده که منم دارم یه نصیراصولها خیلی مشهور نیست اما لازم شاید پیدا بشه این کتابخانه مثلا مرعتی الله چاپ این کتاب یعنی روغئیه بزرگ نیست اون خیلی چاپ سریه من به صحت اون چاپ کمتر دیدم یکی چاپ زمان خیلی خوبه یکی این یعنی چاپی که الان عرض کردم چاپی هم که با حاشیه مرحوم آیه آشتیانی چاپ شده چاپ به لحاظ احتواء بر مجموعه خطبه و حواشی و اینا خوبه اما روشن نیست یعنی گویا نیست از همه گویاتر به نظرم همین مطلبی است که در نسخه خط خدا اشتهیانی آمده که من دارم این یعنی آدم کاملا میفهمه که شیخ اول چی نوشته بوده بعد چی کار کرده خیلی واضحه تو نسخه ایشان این تغییر و تبدلان در اول کتابه تا اونجایی که من میذارم این نسخه از نسخه چاپ نشده این وقتی بودم فکر داشتم چاپ بگم که نشد علایاهاله نسخه خوبیه انصافا نسخه اشتهیانی یعنی به این لحاظ از مکاسب هم اصولا نسخه نداریم اینا که جلال باعث ما در مکاسب نیست اما اصولا نسخه نداریم. حادثه این مرحوم آقای هاشم رحمت ستوشی چون می‌بینید مرحوم شیخ انصاری قدس الله و دو دختر بیشتر نداشتون که سر نداشتن آزاده سر نداشت یکی از دختراشونه یکی از علمای شوشتر میلن ماشی منصور پدرش اسمش منصور یک دخترشان به یکی از سازات می دهند این دو تا خانواده معروف به سفت سفت و شیخ نباهای دختری شیخ یک تیرشون شیخ یک تیرشون سیدن شیخ ها بیشتر در همون بسوری شوشتر سیدان ساخن تهران هستند یکی شون هستند زرگانشون فوت پروترشن ساخن قرضم آهای آشه احمد سفت و شیخ که نبای دختری در اون شیخ بود ایشون می گفت پدر ما یا جد ما که بود یک سفری میاد ایران و هنوز کتاب های شیخ اون مکاسه و اینا به خط شیخ موجود بود در فکر بود که برگرده مثلا به نجف بعد نگذاشتنش بعد اونا تلف شده این کلا اون چیزی که واقعا طول خونه افتاده ای نشه این چیزی که والارا مثلا ارضا یک سفر موقتی بنا میاد کیات مثلا دستو داشوشترشو نگهداره نتیسم اون کتابا اونجا میونه بعد تلف میشه ارضا چیزی از مکاسه وجود داره شمیرا تو استان قصه ادعا شده یه قفایش به خط شیخ هست راسلین از طلب راه نجات طلب کرده من نیدرم شما خدای نیدرم نعر اول اما آیه صفر رحمت الله علیه آیه اش احمد که من بزرگوار و فاضلیام بود انصافا رضوان الله تعالی علیه ایشون برای من اینجوری نعر کرد که اصلا نسخه ها از این رفس طلب شده شده بخاطر شیخ خوده طلب شد اون یکی که الان ما داریم تو رسائل داریم که کامله یعنی رسائل بینان همه رسال رساله رساله حجیه المزنه رساله و والاستغفار رساله الاستصحاب یا رساله الاستصحابی الان من شوخی داره رساله تعادل و ترجیح یا ترجیحات اون چن بود این چهار تا رساله است بعضها توثیقی که از شاگرد های شیخ میرزا محمد رضایی ده سولی شیخ محمد رضام که اسمر داد توی اون نسخه ای که عثابش حاشیه مروا اشته نمی داره ایشون در اونجا ایشون رسائل رو عنوان نه فرائد الاصول بشه این فرائد که شیخ گذاشته رزمان. این رو بعدها به کتاب میدهن پس کاری که در کتاب شد یک این شد که از اون حالت رسائل متفرده این نامده جمعش کردن شد مقتدال اول بعد رسائل جمع مقتدال ثانی مثلا توی اول برایت و سال اصال برایت و هم داره باز این بحث که انسان که شک بکنه یا شک در تاید. در اونجا نوشتن بعد اضافه کنه المحصد سالس فشه اعلم ان نوازا کرد یاده این المحصد سالس رو برای انتجام کتاب به این رساله اضافه کرده یا توی مثلا استصحاب شد نوشی شک یا یولا هست, هست. سابقه یا یولا هست المحصد الاول اضافه یولا هست یا نو الاول محصد اول توی رسال نگاه کنی من دیگه سمانه شد الفسانی ما یولا هست یه اون رساله استثابی شیخ اینه نداشتن این بعد اضافه کردن این برای انسجام پس در حقیقت چهار رساله جدا بوده برداشتن به این صورت انتجامش دادن این در حقیقت خود شیخ تعلیف شیخ نیست الان هست دست ما این بعد شده احتمال قدیه هم میدم که این یه اول زمان شیخ توسط شیخ شده این آخر رو به نظر بردی اضافه کرده باشن الان من دقیقا عبارت مرموم آقای آشانسان آشتیانی در ذهنم نیست آن به نظم در اولیشون اضافه کده از مخصول اول از مخصول سان در از این مبارس شیخ این صورت نبود یکه بعد از شیخ اینجا افتاد و صرف اینکه که حتی در کتاب احل سنت هم ما نداریم این رو اصلا در کتاب شیعه هم نداری. در کتاب شیعه لکه بعدش اینجا این جا افتاد مثل کفایه که الان عرض کردم بیشون آمد دیگه همون حرفای شهر رو تنظیم کردم با حرفای قدم ها از وقت مبارسه الفاظ شهر. توسط شاگر ایشان مرحوم به اصطلاح چنان تر و آسومی کن تر یا مرحوم بردازه این چیز شد به اصطلاح به اسم تقرات مرحوم شهر مطارق الانزار شد. اما اونی که خودش قلمش قلمش این چهار رساله بود که بعدها به این صورت در آوردن نتیجهش الان اینجوری شد که یک مقدمه ای در سیزه نکته مثل کفای فلسون هشتا مخصد مقصد تاشت به مبارس الفاس مقصد ششم در هجج و امارات هفتم تو اصول عملیه هشتم توی تعادل و ترجیح یا تا آراز عدله خاطب هم این بعدها شد اصلا نبود اصلا تو اصول ما نبود تو کلمات شیخ هم نبود یعنی شیخ اول نبود چی بعد این کارو ظاهرا بعد اضافه کرد این چهار ساله شیخ یک شکل منسجم گرفتن پس مثلا اول و دوم قسم اول و قسمت دوم اضافه شد این چهار رساله با هم رابطه پیدا کردن لایلا در اصل 4 رساله غیر مرتبط بودن مثلا رفتی با هم نداشتن رفت و ظرفی با هم نداشتن داخل یا حالا تو اصول ما جا فعلا تو اصول دنیای شیعه این رفت و زفت فعلا جا افتاده و البته در اسنا هم تعدیلاتی و اعاده نظری مثلا مرومه های های به اصلاف های محقه اسمانی مثلا میگفت نه ما چار فصلش بکنیم یک برزر از حالت هم جابجا به جا از مقدمات داره بود توی فصل اول که در ظهورات انداخت. به علاوه اینکه من دیگه می‌خوام چرا راجع به این مباحث اصولی من چند بار صحبت کردم که چه تکرار نمی‌خوام بشه. اصلا خدمتتون بعد در خلال بحث اشاره خواهی می‌کردم. پس بنابراین اونی اون که الان موجب شده اصول متأخر شیعه به این صورت در بیاد این به حدود 160 70 سال قبل باز به همین تغییری که خدمتتون عرض کرده، که اصلش از شیخ بودا به این صورت بود البته حالا این مبحث آیه درست هست علمی هست یا نه ما اولی نظاری متعرض کلمات میشیم